بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى قل إن الصلاة ونسك ونحيايا ومات لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ودليل الذبح ضبش ضبش داریم نحر داریم. معمولا هر دو دو کلمه دو تا کلمه در لغت عربی همون در زبانکن هم به معنای سر زدن یا سرزدن حیوان. حالا معمولا نح اطلاق میشه به سر زدن شطور که معمولا با چاقو میزنن زیر گلوش و زبش معمولا به زیر شطور بفته میشه هرچند که هر دو تاش وقضاستن چاقو روی گردن حیوان برای اینکه زبش بشه، سرزدن حیوان بهش میگن زبش کشتن حیوان با, با چاقو بهش میگن زبش اما اگر با چاقو نباشه با دست باشه اونش میشه خفه کردن. اون مخنقه هست. خن شده یعنی خفه شده. دیگه زبش نیست. ذبیحه حیوانی هست که سرش بریده شده با چاقو یا با یک چیز تیزی بریده شده. الان اینجا مخواد معلق ثابت بکنه زبح یعنی زدن که اونم عبادت خب ما عبادت داشتیم عبادت قلبی داشتیم از, از توکل و از ترس و از رهبت و از انواع دیگری که ما داشتیم محبت و دیگر مسائل و همچنین عبادت, عبادت قولی داشتیم و دعا کردن و زک گفتن و عبادت های بدنی که یکی از اونها الان بحث نماز و روزه یه جا و ان المثب که گفتیم این آیه دللت در این که عبادت های مال خدا هستن. حالت به مع اللهی که بحث بر میگرده به دعا. اینجا یکی از انواع عبادت ها همونطور که مسجد مال خدا هست برای عبادت کردن گذاشته شده یه سری چیزها هست از اعمال که بازم هم عبادت همونطور که نماز ادته دعا هم عبادت ظرف رو نظرم هر دو تا عبتا دلیل بر اینکه اینها هم باید خاست خدا باشن ما باید خالصانه برای خدا انجام بدیم چیه؟ فرموده قضاء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خلی جالبه سدول بإن آيه قل إن صلاتي. نماز من نسك من كل جاق خلی هز اين بلا إن نسوك همو زرحه همو زرح كعدن همو قرباني كعدن. ومحياي ومماتي وزندگاني بزن ومردن من لله إلا مماتي. خودتون میدونید یا به معنی استحقاق میاره یا برای هم ملکیت نگرا مسائل دیگه در این آیه این لا هر دو تا معنا رو در بر میگیره معنای استحقاقی و معنای معنای ملکیت مثلا میگم هذا القلم لفلان این قلم مال فلان کسه یعنی مصحح یا مال خودشه یا ملکیته یا استحقاق رمیا حق فلانیه خب این لامی که در لغت عربی هست به کار برده میشه قسمت اول قرن و نسف اینجا استحقاقه یعنی فقط خداوند مستحقشه نهی ای خداوند مالکشه خداوند مالک نماز نیست مالک نسوک نیست برای خدا این کارها انجام میشه مستحقش خداوند قل این نسلاتی و نسوکی درست در لغت عربی اینجا ایجاب میکنه وقتی خداوند میشه مستحقش چیزی که جز مستحقات خدا هست سرفش برای غیر خدا میشه چی؟ میشه شرک شرک اکبر من عمل عملا. عشر معیا فيه غیری ت هو و شرکت کسی عملی انجام بده شریکی با من در اون عمل قرار بده خودت و شرکش راها میکن پس اینجا این عمل این نسک امامال خداست نباید شریکی غیر از خدا برای خدا در این عمل قرار بده باید خالصانه لندا باشه. و اما و محیای و مماتی زندگانی و مردن انسان ملکییت یعنی در دست خداست چرا؟ چون خدا هست که ما را زنده نگه داشته و خدا هست که با تقدیر کونیش ملکوتیش روبویتش ما را می میراند. ما را می می راند بخاطر همین این آیه قسمت اولش توحید الوهیت را در می گیره قل این نسلاتی و نصفی ترخید چیه توحید الوهیت یعنی خداوند در این امر الوهیت در این امر عبادتون اصل الوهیت عبادات دیگه توحید اولویت به توحید عبادات در این تالیه در این عبادت و پرستش کی مستحقه در نماز و در قربانی کردن خداوند فقط مستحق بشه و محیا و مماتی بحث اقرار به ربوبیت خداونده اینکه زندگانی ما و مرد و میراندن مرد، ما از دنیا بردن ما به دست کیه به دست پروردگار یعنی اقرار کردیم به رویت خداوند اینکه خداوند مالک جان ما هست هر وقت قبل ما را از دنیا میبرد. پس همونطور بعد این آیه خودسان و مماتی لله رب العالمین دوباره ازباب تأکید بر این دو نوع توحید روبیت یا توحید علمی اقرار به و صفات خدا و روبیت و خدا. و توشید عملی که بحث یک تا قرار دادن خداوند در اعمال ما اونجا یک تا قرار دادن خداوند در افعال خودش توحید علمی اینی که ما خدا را یک تا قرار بدیم در افعال خودش خدا رو مالک بدونیم خدا رو رزاق فقط بدونیم خدا رو مخلب دبر بدونیم ای توحید توحید این توحید قلبیه توحید عملی اینی که در افعال خودمون خدا خودم رو یکتا قرار بدیم یعنی افعال خودمون فقط خالصانه برای خدا انجام بدیم این آیه قسمت اول ان صلاتی و نوسكي افعالك هي افعال ما صلاتی و نوسكي اینجا برمیاد به این فعل ما بمحیا یا اماتي اینجا فعلت این دیگه فعل دست خدا بنده که زنده میکنه و خداوندی که میمیرانه بعد بخاطر همی میگه لله رب العالمین رب العالمین ترشیده چیه؟ اقرار به ترشید روبیه اقرار به ترشید روبیه لا شریک له شریک هم خدابه نداره که تأکید بر مسئله ولوهیت خدا پس بس معنای این آیه چنین میشه که فبردگار همون که تو ما اقرار کردیم و اقرار داریم به این که تو مالک جان ما هستی همانطور هم اقرار میکنی به عبودیتت به پرستشت در دا در نماز و همچنین در قربانی کردن و زبش کردن خود ان صلاتی و نصف و محیای و مماتی لله رب العالمین زبش کردن خیلی مسئله مهمی هست وقتی که سر حیوان بریده میشه تنها زبش در عید قربان نیست اذاحا نیست که عبادت مطلقاً زبش کردن چیه عبادت مطلقاً به خاطر همین هم ابن قیم هم ابن تیمیه حرف جالبی دارن در بحث زب میگن خودشون اونها میگن که زبش در زبش کردن سربریدن شیبون تعظیم خداوند هست و یکی از زیباترین عبادت ها و عظیمترین عبادت ها زبش کردنه که انسان عبودیت خودش را برای خداوند ثابت میکنه چطور عبودیت خودش را برای خداوند ثابت میکنه؟ خود زرب، اصل زرب کردن، اصل ترویدن شیبون انسان عبودیت خودش را برای خدا ثابت میکنه شما نگاه خب ما قبول داریم خداوند مالک خداوند رضاقه و تا ال آخرش خداوند خالقه خداوند حیبون را برای ما خلق کرده ما اقرار داریم که خداوند خالقه وقتی که ما چاقو رو دست میگیریم خفش نمیکنیم کنیم چاقو رو روی گردن حیوان و میگیم به اسم الله به اسم خداوند به برکت این اسم جلاله سر این و به اذن خودش که خودش گفت من به اسم به اسم خودش اگر به اسم خودش نباشه دیگه اون زگیشه میشه حرام همونطور خداوند که حرمت علیکم المیت و الدم ولحم الخنزیر و ما اهله لغیر الله به اهلال بشه یعنی ذب حیوانی که ذب بشه برای غیر خداوند اون اونتی اون حیوان حرامه حرمت علیکم آخرش میگه و ما اوهل لغیر الله به اون حیوانی که احلال شده سر بریده شده برای غیر خداوند اون ذب برای غیر خداوند و اون ذب چیه میته است و حرامه خب وقتی که انسان چاقو را میذاره سر حیوان و به اسم الله سر حیوان را میبوره داره چی میگه به خودش قلبا چی هست خالبا داره اقرار میکنه به این که خداوند اولا خالق اینو حیون رو خلقت کرده و خون را درش جریان گذاشته دو اینکه راه حلال شدن راه حلال شدن راه مباح شدن این گوش برای خوردنش چیه اینکه چاقو بذاریم سرشو خوب کنیم و خونش ریخته بشه خداوند هست که به این طریقه اون حیون رو بر ما حلال کرده ولی در غیر این صورت اگر این کار رو نکنیم میشه حرام. اینجا اطاعت فروردگاره. اینجا اطاعت یک تا قرار دادن خداوند در افعال خودمون. پس توشید علوهیت که در اثر و در ازای چی اومده؟ در ازای روبیت. ما اینکه که اقرار کردیم به روبیت خداوند، به خالقیت خداوند، سر حیوان رو میبوریم با اقرارمون که اینکه خداوندی که فقط حلال و حرام میکنه، اوامر و نواهی فقط از طرف خداونده. به عبودیت نسبت خداوند اقرار داریم میکنیم. پس این فعل همراهش اقرار قلبی هم هست. اقرار قلبی بر ربوبیت خداوند و بر الوهیت خداوند. ابن تیمیه میگه در جلد 11 صفحه 400 اثرات عراقۃ الدم لله أبلغ في الخضوع والعباده. یعنی خضوع و خشوع و ببخشید اطاعت خداوند درش از در این تذبحوا للمعبود فإنه الذل والخضوع له ذل بريء المعبود ذلته فروتني هذا يك اطاعتي هذا هس ترمامبري هست پروردگار كما قال تعالى ذلك ظم من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ان تقوى پروردگاره این طه پروردگاره اگر چوپور نداره خفش بکنی میشه حرام نمیخوره از اون مردار نمیخوره از اون میته اون مرداره اون حیوانی که ذبح نشه خداوند وسیله داره وسیله قرار داده وسیله اش چاقوه با چاقو بزاری یه چیزی گردن اون رو بزنی این اقرار به ربوبیت خداوند و اقرار به الوهیتش با این سر زدن و این تعظیم شعائر خداوند یعنی تعظیم دین خداوند که تقوای خداونده و اگر کسی این کارو نکنه تقوای خداوندو نداره اون کسی که ذبح بیکنه به غیر خداوند اون کسی که قربانی میکنه برای غیر خدا سر حیوان رو داره به اسم فلانی یا زیر پای فلانی برای پای فلانی این شخص خدا را تعظیم نکرده حالا بحث این که ما اگر حیوانی را زفر بکنیم، زیر پای دامات روی خونه رفتیم یا روی ماشینی زفر کنیم حکمشیه به اسم الله زفر را میکنیم زفر اگر کنار بوتی باشه برای بوتی، برای قبری برا چنان چون عبادت صرف شده برای غیر خدا به اسم فلانی باشه حالا میخواد اسم ولی باشه اسم هر کسی باشه شرک اکبره ولی که به اسم الله باشه ولی دیر پادما توی خونه جدید روی ماشین جدید اینها چیه شرک اثره؟ چیزی که وسیله نیست وسیله قرار دادی چون اون شخصی که این کار انجام میده برای چی این کار انجام میده این کار انجام میده به خاطر اینکه اعتقاد داره این خون دفع بلا میکنه دفع, دفع میکنه کجا در شر اومده آیا کونن ثابت شده که نیست آیا شرعاً ثابت شده که ثابت نشده و رسوال کسانی که کاری انجام داد پس بدعت یک نوع شرک غر در دینه همون که تطیور و تمائم اینها شرک غر بودن این نوع دوم یک نوع داریم الا ذبح برای خداوند که یکی از بزرگترین عبادات هست ذبح برای غیر خداوند شرک اکبر ذبح زیر پای کسی برای کسی اونجا هست که چیه اونجا هست که حرامه و بدعت در دینه و احداث در دینه زح داري جوهاي ديان كمباحي بل كمستحبة مثلاً رسول الله عليه وسلم يقول أول ما لو وشى حتى كرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفلمه بكون براي شخص كداماد كمستحبة كشخص براي الزواجش يا براي براي مهمنش كرسول الله صلى الله عليه وسلم يترجمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاليكرم غيبة فاليكرم غيبة یعنی اگر کسی از شما ایمان به الله روز آخرت داره اکرام بکنه به مهمونش مستحبه انسان سر بزنه برای مهمانش یعنی نیک راه یکی از راه نیک برای تقرب به خداوند اینی که حیوان سرزده مش الله انسان نمیتونه چیزای دیگه برای مهمان تقدیم میکنه ولی که یکی از چیزهایی که انسان اند... میتونه به خدا نزدیک بشه بحث ذبح کردن حیوانه همون که ابراهیم گوساله ای را سر زد برای مهموناش اما اینکه برای تجارت باشه برای امور امور عمره معاش باشه شخصی مثلا قصابی بزنه این امر مباحه که خداوند در خرید و فروش انسان برای خرید و فروش ذبح کنه پس برای مهمان میشه گفت مستحب میشه گفت مباح برای تجارت هم مباح برای کسی نیست اما زیر پای دام زیر پای عروس اون ذبح بدعت چون ما در متوکل میشی متبرک میشی به اون زبش برای اون شخص اما اگر این ذبح مثلا فلان جادوگر میخواد خدمتا تلفنی باطل میکنم میگه فلان حیوان رو بیاد سر بزنم چون خیلی ها این کارو میکنم میگه حیوان رو بیا میخوام سر بزنم برای جن این ذق برای غیر الله در قسمت اول وارد میشه اگر بر پیش ساحری بردیم جادوگری بردیم حیوانی که ذق میکنه در قسمت اول در ذق غیر خدا وارد میشه اونجا هست شرک اکبر اگر برای ساحر و جادوگر برای جن بود اما زیر پای دو مال در ای باشه اینا شرک اصغر برای اکرام مهمان که مستحب گفتیم برای تجارات كمباحات بفرمدي خدابا أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون قردن أز ذبيش فخليد فروشش لأز أم أمور مباحية كخدابا بهم إجازة داده كدر إمرار معاش من أذش استفادوا لا سنة محمد لعن الله من ذبح لغير الله الله لعنة بكونك بغير أز بغير الله یعنی کسی برای جنی، برای مخلوقی برای ولی سیدی یا هر کسی که باشه میره پای مزار فلانی زفت میکنه پای قبر فلانی زفت میکنه این زفتش لغیر الله نباشت هرچند که بسم الله بگه اگر قصدش خدا باشه نعمه در جای حرامه حرامه این نوع پنجوم زفت زفت کردن حیوان برای خدا رفتی گردهش کجا رفتی کنار یه قبری نار یک مزاری بوتی، یک مشهدی از مشاهد مشرکی راستی اونجا جایی که شرک انجام میشه زبح انجام دادن حرام اونجا زبح انجام دادن حرام چرا؟ شخصی گفت یا رسول الله اینی نظرت ان ان حراب بوانه ناز که فلانجا قربانی انجام بدن در بوانه قال افیحس سرم و من جاهلیه آیا او وثن من وثن الجاهلیه؟ بطی از بطای جاهلیت اونجا هست آیا مشرکین اونجا یعنی شرکی انجام میدن شرکیاتی اونجا هست گفتن نه او عيد من عیادهم، عید از عیادهم هم او كما قال علیه الصلاه والسلام عید از اعیاد اونها اونجا هست انجام بدن فرمودن نه قال اذا فاو في پس بس تو انجام بده یعنی اینجا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش میگه انجام بده با اون دو سوالی که انجام داده بود شرکی اونجا هست یا مشرکین تجموع و شادی دارن؟ یعنی, یعنی مشارکت با اونها یعنی جایی که مشارکت در گناه هست جایی که نظریه پخش میکنن جایی که نمیدونم ذکر برای غیر خدا میشه تقرب و عمل خوب و نیک انجام دادن در اونجا چی حکمش حرام درست نیست هرچنکه کس... لله الله زبعت برای خداونده ولی کنار قبل و نستی این حدیث هرچنکه نست واجبه ولی که ایفای نست در جای حرام حرامه درست نی حرام کسی بره نذر بکنه کنار پتی جایی که معبودی پرستش می‌شه به خداوند بریم از بحث نذر بحث از به بحث نذر و دلیل نذر قوله تعالی یوفون بالندری و یثرفون یوما كان شھرهم مستقرا بحث لعن کنی که مشرح شده كل لعن یعنی طرد از رحمت خدا یعنی رسول داره نفرین میکنه، داره دعا میکنه که شخصی به غیر خدا ذبح کرد خداوند محرومش کنه از رحمتش این دعای رسول الله به حدیثم صحیح و ثابت در صحیح مسلم و اما نذر یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شبه و مستقیره اینجا خداون داره مدشه ستایش میکنه از اوصاف مؤمنین اینه که به بالنذر میکنن بالنذرشون وفا میکنن و یخافون یوما کان شبه و مستقر. خوف از خداون خوف از عذاب و خداون عبادت عبادت نیست بحث شد قبلا عبادت از عبادت هاست وفای به نظر عبادتی از عبادت هاست و خداوند داره می کنه. ما رو ستایش میکنه ما گفتیم عبادت فعلیه که خداوند اعلان رضایت کرده و دوستش داره اینجا آیا اعلان رضایت خداوند هست درش یا نیست بله اعلان رضایت خداوند از بندگانی که ایفا به نظر میکنم حالا آیات ما زیاد داریم در این آی... زیاد نه چندتا آیه داریم در بحث نذ از جمله فرموده خداوند و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار و ما انفقتم من نفقه نفقی نمیدید یا نذری نمیگونید مگم این الله میداند الله میداند این چی؟ امام طبعی حرف میزنه میگه اگر کسی نفقش یعنی ریا بود اگر کسی نذرش برای غیر خدا بود برای شیطانی بود برای ولی بود خداوند میداند و بلانید که خداوند عذابش در ناکه و بدونید که هیچ کسی نیست که نوزتش بده تمام که نفقتو ریاا للناس اون رو دوره لشيطان جازاه الله جازاه أو عده من العقاب و من العذاب خودمن عقوبتش میده به عذاب در ناکی که وعده داده و من انفقتم منفقا من النار فان الله يعلم وما مال الظالمين اجات شما نذر برغير غیر خدا کردی ریاکاری کردی اونجا بدونید که شما دارید مرتکب ظلم میشید و زل... کسی که ظالمی میکنه دیگه هیچ کسی نیست که روز قیامت نجاتش بده یعنی شما اگر نظر به غیر خدا کردی شما توقع دارید که اون شخص روز قیامت نجافتون بده به دادتون برسه حالا میخواد هر کسی باشه شما اون نظری که برای اون شخص مرده انجام میدید پس طرف حساب شما دیگه خدا نیست طرف حساب شما, شما شخصه پس بدانید شما و مال الظالمین من انصار که نصفه جز خدا من شما ندارید چون برای غیر خدا بوده و غیر خدا نمیتونه در روز قیامت برای شما سودی برسونه به نظر. خدا الناذر چیه نذر اون چیزی که ما بر خودمون واجب میسازیم در ادای آلا یا چیزی باشه یا چیزی نباشه مطلقش داریم مقیدش داریم خدا نذر مثلا بالفعل من مطلقم بر خودم امشب نذر میکنم که دهره کد نماز بکنم لله نذر میکنم تعهد میبندم به خودم امشب من به خودم دهره نماز این نظر مطلقه برای چیزی نیست لله من نظر که برای خداوند این نظر وفاش واجبه و عبادته و اینجا هست که خداوند داره مدشش میکنه میکنه و ایفای به اون واجبه و مستحبه که انسان اشیده نظری بکنه که لله قبل از این که حادثه پیش بیاد در مقابل چیزی انسان بیاد نظر بکنه پس نظر اول نظر مطلقه که مکروه نیست نظر مطلق که مکروه نیست بلکه مباحه یا مستحبه و اما ایفای به آن واجبه که ایفای به مقیدش هم واجبه یک نوع نظر دیگه داره که مقید مکروه یعنی انسان در ازای یک چیزی مریضی مریض شفا پیدا بکنه نظر بنده که من فنا ده روز روزه روز بگیرم این شخص بخیله این نظر کراحت داره چرا؟ چون در ازای مقابلی میخواد برای خداوند بند از قربات عبادتی از عبادتها را انجام بده. رسول الله صلی اللہ علیه و سلم بی "ان این لا يقدم شيئا ولا يؤخر. ندر نا چیزی تعدیم میکنه نا تأخیل میکنه. و اینما يستخرج به من البخيل ندر از کی بی از کسی که بخیل. کسی که بخیل ندر میکنه. شما بخیل نباشید. لله انجام بدید بگید من انجام میدم نه به خاطر مقابل اگر این کار انجام شد من انجام میدم نه بگید من لله این کار رو انجام میدم خداالاخواس این مشکلمو حل بکنه یا نخواست انجام نده نه در ازای مقابل نباشه چون اگر در ازای مقابل بود یعنی حالت طلبکاری پیدا کردید این کارو کردید خدا مشخص روزا نشون در غیر ایشا شو گذرت یعنی نیستم به خاطر همین این ناس گفتن علما مکروهه نگفتن گفتن حرامه این نظری که از بخیل صادر میشه این بخل در مقابل خداوند کراهت داره و در هر دو حاله چه نظر مطلق و چه نظر مقید در هر دو تا بفاید اون نظر واجبه رسول الله صلی الله علیه و سلام بیتر میان من نذر ان یطیع الله فلیطعه کسی اگر نظر اطاعت خدا بکنه فلیطعه امر واجب فلیطعه و من نذر ان یعصه فلا یعصه کسی اگر نظر بکنه در معفیات به اون معصیتش انجام نده و نظر در معصیت هم ایفا نداره نوع سوم نظر نظر در گناه در ازای گناه مثلا اگر یعنی من به اگر من خداوند بهم توفیق دادی که من دروغ بگم غیبت بکنم یا مثلا فلانکس زول بکنم یا هر طور دیگری حرامی انجام بدم من این قدر روزی میگیرم این نظر در حرامه در معصیت خداونده که این نوع نظر حرامه پس نظر مطلق نوع دوم دو نظر مکروه که مذر مقیده نوع سوم نظر حرامه در معفیت خداوند و نوع چهارم نظر غیر الله و شرک اتبر نظر غیر خداوند و شرک اتبر و اون نظر شرکی هست چون ما گفتیم عبادت و عبادت باید خالصانه فقط برای خداوند انجام بده اگر ثابت کردیم که نذر ادته که این دو تاعای رو گفتیم میوفونه به ننظر و فرمودی با معفق من نفق و ند من نذر و ع الله علمه وقتی که ثابت کردیم که این عبادت صرف عبادت از خدا به غیر خداوند خدا چیزی که برای خداوند و خداوند خدا مستحق بشه برای غیر خدا انجام بدیم اون نذر باطله و با اون نذر حرامه و اگر برای غیر خدا شد میشه شرک بر اگر بغیر... نذر بگر حالا سوالی که زیاد مطرح میشه. با اونم اینه که اگر کسی نزد کرد نزد کرد که قربانی میکنه برای خدابند در مقابل معصیت مثلا بالفرس اگر من بانک اینقدر بام به هم داد من شطوری سر میزنم اگر بانک رفتن من قرض ربوی بگیرم من میدونم این شخص در اضای قرض گرفتن ربوی از بانک میخواد چی کار بکنه میخواد قربانی بکنه حال حکم خوردن از این قربانی چیه یا کسی نزد کرده که که در راه خدا صد گونی برنج بده در راه غیر خدا ببخشید کسی نزد کرده در, غیر... در راه غیر خدا برای فلان ولی برای فلان مرده ای بخواد صد گونی برنج بده حکم اون برنج ها چیه ما اگر بحث قبلی بهش برد بگردیم در بحث زر به غیر خدابند اگر مشارکت باشه در یک گناه تعیید باشه مثلا جایی برای غیر خدا انجام میده آیا عید از اعیاد جاهلیت هست؟ بودی از بوتهای جاهلیت هست که مشتیکی قروبات خودشو انجام بدن اگر در کنار بوتی از اونها یا در تجمع اونها بود اونجا هست که چی درست نیست که ما مشارکت بکنیم و از اون زمیشه بکنیم و از اون غذا بخوریم اون چون اون کار ما اون فعل ما مشارکت و تعییدی بر اونها است. حال اگر کسی در خونهش گفتن این نظریه ای این یک گونی برنگ برای تو حکمش چیه بین علما اختلاف در این قضیه برژه از علما گفتن حرامه چون اینجا شخص متقرب شده به عمل شرکی شرک اکبره و اون مال مثل به غیر خدا بان حرامه. چون به غیر خدا وقتی که بشه حرامه. این دیگه شکه. و ما اوهلا غیر الله به این دیگه حرامه. اگه زب بگیر خدا بشه. یعنی برای برای ولی سرزده بشه کنار نارکابی. اون شکه در حرمتش نیست. حال غیر از زبیشه. برنجی اووردن کسی کرد برنجی. یا کسی کرد زبشی بکنه حیوانی. حکم خوردن چیه؟ مشارکت رفتن به اون جا درست نیست. حال در خونت آوردن از اون گوش. از اون غذا آوردن. از اون بنرجه اوبردن مثلا حکم شیئه شیخ ابن باکر رحمه الله میگوید حکمش حکم غنایمی هست که مشرکین کنار بتاشون میذاشتن یا برای بتاشو تقدیم می‌کردن از طلاها و جواهرات دیگر که وقتی اسلام اومد و فتوحات شد رسول الله صلی الله علیه و سلام کل اون انوار لا را متصرف شد و به بیت المال الحاق کرد اونها را اونها را وارد بیت المال کرد و بین مسلمانان به عنوان غنیمت پخش کرد. اگر مال حرامی بود درست نبود این نظریه های مشرکین از اینطلا و جواهرات اگر درست نبود استفاده بکنن هیچ وقت اجازه نداشت رسول الله صلی الله علیه و سلم توزیع میکنه بین مسلمانان از اون مال حرام پس استفاده رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون مال جایی که تایید بر اون گناه نباشه چون رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه حد اتبن برد، برس کرد نابودش کرد اونجا بود که دیگه معالم تأیید شهر درش نبود. اونجا دیگه ترس از این نبود که تأیید فعل ما بر اون کار بشه. اگر ترس داریم که این فعل شاید منجر بشه به تأیید اون, اون بنا نظر به غیر خدا کراهت داره. دیگه نکرد. اما در غیر این صورت اون تعام، اون غذا، اون چیزی که اووردن نظر هست، نظر بازرش فرق میکنه، کنه. میشه می شه پنوانی یک غنیمت، أجاش استفادك وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد